اعوذ بالله الزمیع العلیم من الشیطان اللین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام و على نبینا و الطاهرین خدمت عزیزان دانشجوی خودم ارز سلام دارم و سقخه ارز میکنم انشاءالله که از نعمت صحت و سلامت کامل برخوردار باشید و از هر گونه آفت و گزندی به بحث ما در بُحور شد با خواندن 3 از بحرها به پایان رسید بحر طویل که گفتیم لهو بین مرد لهو بین البحور فزائل فعولان مفایلان فعولان مفایلان بهره طویل بود فعولان مفایلان فعولان مفایلان بعد از بحر طویل و مشخصاتش گذشتیم رسیدیم به بهره بسیط این البسیطه لديه یبست العمل ان البسيط لديه يوبثت العمل مستفعل فاعل مستفعل فاعل يعني مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل, مستفعل فاعل. مستفعل فاعل. مستفعل فاعل. و بعد از بحر بسيد بحر وافر رو با هم خواندیم که بحور و شعر و فروها جمیلو متفائلن متف بحور و شعر و فروها جمیلو مفاعلتون مفاعلتون فعولو که این سه تفعیلی ای بود در هر مصراء مفاعلتون مفاعلتون فعولان مفاعلتون مفاعلتن فعولان بعد از بحر وافر خواهیم رسید به بحر کامل به بحر کامل خواهیم رسید بهر کامل بهر چهارم است که ما خواهیم خوند بهر کامل بحر بهر کامل بحر بسیار زیبایی است و خیلی هم چرخش در بین فصاید داره مفتاح این بحر اینه بحر کامل مفتاحش کمل الجمال من البحور الكامل کمل الجمال کمال جمال نهایت زیبایی از بین به بهرهای شعری بهر کامل کمال جمال من ال بهور کامل متفائلون متفائلون متفائلون خب این بهر الان یه فرقی با بهرهای قبل داره متوجه و اون اینه که اون بهرها از دو تا تفعیل تشکیل می شدند. اولی بهر طویل فاولون مفایلون دومی مستفعلن فایلون و سومی متفایلون متفائل فاولون اما اینجا شما مفاعلت مفاعلتون فعولون اینجا شما دارید از یک تفعیل برای ساخت بحر استفاده می کنید متفاعلون متفاعلون متفاعلون کمل الجمال من البحور کاملو متفاعلون متفاعلون متفاعلون سه تا متفاعلون همه متفاعلونه ستای تای اول مسرا اول سه تای دوپم مسرا دوپم متفایلان متفایلان متفایلون متفایلان متفایلان کملل جمال منال بحور کاملون میگه یعنی تعلف من تشکیل میشه این بهر از تفعیله متفائلون تکرار رو 6 در حالی که تکرار میشه 6 مرتبه الان نحوه تالی به این شکلی که شما می بینید متفائلون متفائلا متفائل متفائل متفائلون یعنی به این شکلی که شما دارید می بینید. شش تا در کنار هم تشکیل دهنده این بحر ماست یا هذا حاضل من تفیلت متفااعان قد جعلوا 3 تمراتن على نهر طال متفائل متفائل متفائل متفائل متفائل متفائل التغییرات التي تطرأ على هوز البحر تغییراتی که عارض میشه بر این بحر که شما باید به ذهن بسپوریم تا اینکه بتونیم ان این بهر رو به نحوه این مناسبش با هم بخونیم هم بهره مفیدیه هم نسبتا راحته اما یه مقدار طولانی تر از بهرهای دیگه است چون اقسامش بیشتر تغییراتی که آرز میشه بر این بهر تغییرات ولتی لطی تطر و, و علاها بر یک زهاف و ازمار قبلا نیز داشتیم که به اون تفعیله ای که داخل بشه بهش می مزمره. زهاب و ازمار و هوه تسکین و حرف سانی من تفعیلت متفایلون. حرف دوم رو ساکن میکنیم از تفعیله متفایلون. که عبارت از ساکن کردن حرف دوم از تفعیله متفایلون. زعاف و و حوات تسکی نرحرفه از ثانی من تفعیلت متفاقه برد خب اگر متفاعلان دومین الان نگاه کنید این متفاعلان الاهیمش و دوتا یو یعنی سبب سقیل هستش اولش خب این اگر بیاد و اون دوم ساکن بشه این تا یو تبدیل به خط تیره میشه میشه سبب خفیف قمش مصطف علون متفاعلون که وزن اصلی است تبدیل به یه وزن اصلی دیگه میشه مستفعلن و فیغیر و هاینا مصطف و حاضه زهاف یلحق و حاضه تبعیل بی جمعی انبای البهر بکسمته این زهاف تو این بحر خیلی زیاد داخل میشه در جمعی انواعش داخل میشه اونا به کسرتن یعنی مع کسرتن یعنی کسیدن خیلی زیاد و لازم نیست متفاعلون رو تبدیل به مستفعلن میکنه زیادم هست تو همه اقسامش هم هست و لزومم هم لزومن نداره یعنی یه بار مصرف شاعر نیازمند بود متفاعلون رو تبدیل به مستفعلن کنه میکنه لزومی ندارد در بیت بعدی تکرار کنه یا در مصرهای بعدیش اونا تکرار کنه. بلا یلزم. در تفعیل اطلالتی یدخل و خاخاز از ما مزمره. تفیل ای که این زحاف بهش میشه بهش میگن مزمره. خب اولیش زحاف ازمان که متفاعلان رو تبدیل به مصطفعلان میگنه. تمام شون. دومیش باز هم اینو خوندیم در قبل های قبل قطع. داشتیم تو تا بعد که بهشون گفتن مقتوعه و میدونیدم که علت بر عروض و ضرب داخل میشه و علت لازم و اجراست مگر جالی مجرای زحاف شده باشه این چیزاییه که به هم خوندیم علت القط و یه حذف و ساکن الوت دل مجموع و و ما قبلن ساکن وتد مجموع رو حذف کنیم وطد مجموعی یو یه خط تیره است ساکنش رو حضف کنیم میشه دوتا یو بعد اون یو دوم رو ساکن کنیم تبدیل میشه به یه خط تیره و در واقع مطلب به یک سبب خفیف یعنی در واقع این میشه شما وتد مجموعتون رو تبدیل میکنید به سبب خفیف. یه یو یک خط تیره تبدیل میشه به یه خط تیره فقط و این علت قطع و یه حذف و ساکنه الوت دل مجموعه و تسیکین و ما قبله حضف ساکنه وزده مجموعه و ساکن کردن ما قبلش و تطفل و تفیلت از زرب تام داخل میشه به تفعیل ضرب در تام فتوس به و تفعیلت و متفاعلان متفاعلان ببین؟ متفاعلان اون یو خط تیله که آخره تبدیل میشه به یه خط تیله میشه فعالاتون. یعنی اگر شما در ضرب به جای متفائلون متفائلون فعیلاتون دیدین این فعلاتن علت قطع به بعد وقد یلحق و ها قطع بر سر فیر مساره یعنی گاه ها زهاف و ازمار گاه یوقات به همین فعلاتن زهاف ازمار داخل میشه یعنی ساکن کردن متحرک دوم یعنی اون دوتا یو تبدیل میشه به خط تیره و يلحق ها زهاف الازمار ويغير هاي را مفعولن الان این مفعولان را چی بش بگی؟ بهش بگیم بهش میگیم مقتو مزمره مقتو است چون متفاعلان تبدیل شده به فعالاتن مزمره است چون فعالاتن تبدیل شده به مفعولن میگه و هو لا این ازمار اینجا لازم نیست نه علت ها اون علت بد وقعه یعنی این ازباه لازمه و تو سم معد تفعیلت علتی تدخلوها ها زهل علت و مبتوعته. و اون تفدیل که این علت بهش داخل شه و متفائلن تبدیل بشه به فعیلاتون بهش میگن مقتوعه خب پس متفائلن در نرب تبدیل میشه به فعالاتن به این میگن مقتوعه گاهی اوقات این فعالاتن دومین حرفش ساکن میشه میشه مفعولن و به این میگن مزمره ظوافه اسم و ظوافر زمار هم لازم خوب این علتات سومین علت حزز این انت الهاز جدید نخوندیم به اون تفعیلهی ای که این داخل بشه بهش میگن حذاء، حذاء آخرش همزه زال هم مشدد علت و به یه حذف، و الوتد المجموع من تفعیلت متفایلون اصلا وطد مجموع رو هست میکنیم خب وتد مجموع هست بشه اون یو خط تیره آخر هست بشه میشه فعیلون و تو غیر و حایلا فعیلون, فعیلون رو الان چی بهش بگیم؟ میگیم هزاق میگه و علت و لازمتون این علت علت لازم است جاری مجرای زعاف نیست تدخل و علا تفعیلت متفعیلون داخل میشه به تفعیل متفعیلون دل عروز و زر. اون قبلی علت قد فقط تو زرد داخل میشد این هم در عروز هم در زرب وقد قد زهاف و ها الازمار گای اوقات همینم زحاف و ازمار بشتاقل میشه یه دومین همین حرف متعبکش ساکن میشه و قد زهاف و ها زحاف و الازمار فیوهیل و ها الا فعلون فعلون ول ازمار و هنا زحاف و یجری اما اینجا زهاف جانی مجرد علته یعنی اگر شاعر آمد به جای فعلان که فقط حضای فعلان گفت که حضای مزمر است اینو باید ادامه بده هم حضایشو باید ادامه بده هم مزمره بودنش حزاش چون علته مزمره بودنش هم زهاف جاری مجرای علت باید ادامه بده این سه علت هزاز با دو علت بعد فرقشون در ازمارشون اینه هر دو ازمار بهشون داخل میشه زهاف ازمار ولی در دو زهاف ازمار جاری مجرای علت نیست لازم نیست شاعر اون رو زحاف و ادامه بده ولی در سه جاری مجرای علته لازمه که شاعر اونو رو ادامه بده خب اینم علت هزه چهار علت و ترفیل علت ترفیل که به اونی که این داخل بشه شروعش میگن مرفله بهش میگن مرفله علت و ترفیل و یه زیادتون این اضافه کردنه تا حالا نقص بود این اضافه است علت هم نقص هم زیاده دیگه علت و ترفیل و یه زیادت و سبب خفیفن علل وطد مجموع یه سبب خفیف به وطد مجموع اضافه میکنیم به اون یو و خط تیره که آخر هستش یه خط تیره دیگه اضافه میکنیم یه سبب خفیف و یه زیاده و سبب خفیفن علل وطد مجموع فی آخر تفعیلت زر فل مجموع. نهیه زیاده و سبب خفیف علل و تدل مجموعه فی آخر تفیلت زربه فیل مجزوع در مجزوعش مجزوع یعنی به جایی که سه تا متفاعلون داشته باشیم دوتا داریم متفاعلون متفاعلون متفاعلون متفاعلون از هر قسمت صد رو اجاز یه دونه متفاعلون هست حالا دو تا متفاعلان این بره دو تا متفاعلان اون بر در این مجزوع ما به جای که متفاعلان داشته باشیم متفاعلاتون داریم یه سبب خفیف اضافه کردیم یعنی متفاعلاتون رو بهش میگن چی؟ بهش میگن مرفله آه مرفله باب مرافله ی بحر مرافله بحر کامله چون ترفنی تو بحر کامل خوندیم دیگه به این میگم مرافله متفاوتون علت تو ترفنی و هیا زیاد تو سبب حذفن عل البتة المجموع في آخر تفويله الزاد بالميزود فيهي له متفاويلان ایلا متفاويلان اینجا یه چیزی رو جا انداخته اینو به شما بنویسید بنویسید وقد وقد دنباله اون الام و اون علائم نوشته، بنویسید وقد یلحقوها وقد یلحقوها زهافل ازمار وقد یلحقوها زهافل ازماره و یغیرها و یغیرها الی مصطفی علاتن الی مصطفی علاتن و هو ولیس بلازم و هو ولیس بلازم این اینجا جا انداخته تو متن میگه ها ولی چون توی اون دوتای بالایی علت عز و علت علت گفت اینجا باید میگفت ولی خب فراموش کرد و قد الحق و حاذه ها فلزمار فیقیرها الی مستفعلاتم و هو لیس بلاص خوب پس علت ترفیل چی شد اضافه کردن یه سبب خفیف بر وطد مجموع در آخر تفعیله زرد یعنی تفعیله چهارم یعنی اینطوری بشه متفائلن متفائلن متفائلن متفائلاتن این چهارمی اینو به چهارمی رو بش مرفله و گاهی اوقات هم بهش بگید زحاف ازمار داخل میشه به جای متفاعلاتون میشه مصطفعلاتون و این زحاف ازمار لازم نیست در اینجا لازم نیست تمام شو. پس یه زحاف ازمار داشتیم که متفاعلون رو تبدیل به مستفعلن میکرد در همه انواق و اقسامش داخل میشد زیادن بود و جاری مجرای علت هم نبود لزوم هم نداشت و به اون تفعیلهی که این بهش داخل میشد میگفتن یه علت قطع داشتیم که و وتد مجموع رو تبدیل میکرد به سبب خفیف این در ضرب پیداش میشد اونم در نوع تامش پس متفاعلان تبدیل میشد به فعلا تلم گاهی اوقات به این فعلاتون تلم ازمار داخل میشد میشد که به این دیگه اون موقع میگفتند مقطوعه مزمره پس خوشو مفعول به و این لازم نبود این ازمار. و ازمار با تفعیلیام که بهش داخل میشد میگفتن مقطوعه اگر مزمره هم بود مقطوعه مزمره مزمره بودنش لازم بس متفاعلان تبدیل میشه به فعیلاتون علت قدر این در زرد داخل میشه اونم در نوع تامش و گاهی اوقات هم زهاف ازمار داخل میشه مفعولان و اگه مفعولان بشه اون زهاف ازمارش جاری مجرای علت نیست سوم علت حزز بود که به اونی که داخل میشد گفتن حزا به اون تفعیلی که داخل شده و هم را رو تبدیل به فعیلون میکرد یعنی وقتد مجموع رو حذف میکرد فعیلون و این علت علت بود لازم بود بلست و متفائلون رو تبدیل به فعلون میکرد. در عروض و ضرب هم پیداش میشد و گاری اوقات بهش زحاف ازمار داخل میشد میشد فعلن و اگر فعلون میشد چایر باید ادامه میداد چون اینجا زحاف جاری مجرای علت یعنی فعلون رو باید بهش بگن هزار مزمره فعلون رو باید بهش بگن فقط حضا فعلون هزار فعلان هزار مزمره و اگر فعلون گفت با فعلان رو ادامه بده خب اینم بالی بعد علت ترفیل رو داشتیم که این در مجزوع پیدا می شود. یه جایی که یه جز از صدر یه جز از اجز هست شده متفاعلون متفاعلون متفاعلو متفاعلو متفاعلو. در ضرب به جای متفاعلان داشتیم متفاعلات رو. و گاهی اوقات هم من گفتم به این زهاف ازمار داخل می و متفاعلات میشد شد و این زهاف ازمار اینجا لزوم هم ندارد زحافیست که جاری مجرای علت نیست خب تمام شد چیزی نبود که ما بخواهیم دو سه بار تکرار کردم که بتوانید تا حدی به خاطر بسپرید و با بخونید خب نگاه کنید انواع بحر کامل یعنی بهر کامله تام و مجزوء تام میاد یعنی متفاعلن متفاعلن متفاعلن موکوفلن متفاعلن متفاعلن این کام کامل تام مجزو میاد یعنی یه متفاعلن از این و یه متفاعلن از اون ور حذف شده متفاعلون متفاعلون متفاعلون متفاعل یعتی بحر, بحر کامل بحر الكامل تامن و 무�زون انوای بحر کامل یعتی بحر کامل و ومیزون و تامم یا تعلف من ست تفعیلات تامش از شیشت تفعیل تشکیل شده و مجزوع من عربه و مجزوع از شهار تفعیل تشکیل شد و کل من هما لهو انواع هم تامش هم مجزوه انواعی داره و یک دو سه میخون حالا اول انواع تام رو میخون که شیشتا متفاعلان هستش اول انواع تام و کل من هما لهو انواعون و انواع تامه، انواع تام. انواع تام. الف، و اینهاست این هست. آن و الف کامل و کامل صحیح کامل یعنی متفايلون متفايلون متفايلون متفايلون متفايلون متفايل. تام یعنی شش تا، صح یعنی چیزی که لازم باشه ادامه بده نیست پس کامل یعنی وزن متفایلان متفایلان متفایلان متفایلان متفایلان متفایلان تام یعنی شش شده صحیح یعنی چیزی که قابل ادامه باشد درش نیست اگر ام باشه مثلا زهاف ازماری که قابل ادامه خب کامل صحیح به حواماکانت تفعیلت و عروزهی متفاعلان و ضربه مثل مثلها عروز و ضربش متفاعلان و سالم و صحیحه و همین دلیبش میاد سهیح چون چیز قابل ادامه توی شید نیست الکامل و صحیح حواماکانت تفعیلت و عروزهی متفایدان و ذر بوهو مثله ها نه با قول شاعر مثل قول این شاعر رأس ابن بنت محمد و وسیعهی یا لر رجال یا لر رجال علا قناتن طرفه ها نه با قول شاعر مثل قول این که در مرسیه حضرت عبا عبدالله علیه آلاف و تهیت و سنا سروده رعصبن بنت محمدن و وسیهی یا لر رجال قناتن قرفه او. لعت مبتدا است. اضافه شده به ابن، ابن اضافه شده به بنت، بنت اضافه شده به محمد صلی الله علیه و آله علی و وسلم. و حالا ببینید این وصیهی، اتم به جای ابن، به جای بنت، به جای محمد صلی الله علیه و آله علی و سلام کلمش، کلم یک خاصی هست. میگه سر پسر دختر پیامبر و وصی پیامبر. باز کجا به جای بند بشه سر پسر دختر پیامبر و سر پسر وصی پیامبر. سر پسر دختر پیامبر و سر پسر وسیع پیامبر، وسیع پیانبر یعنی اونی که پیامبر وسیعیت فرمود او جانشین من باشد در قدیر این کاری کردیم جانشین پیامبر، سر پسر دختر پیامبر و سر پسر وسیع پیانبر یعنی حضرت عباد الله یا لرلجال، این یا لرلجال رجال جمعه یا میدونید که میاد و این لام هم میاد ها بهش میگن استقاسه یعنی یا ل لی آهای مردم آهای مردان به داد من برسید کمک خواسته آهای به دادم برسید یا ل رجال این ندای استقاسه است ندای مستقیسته که با نام استقاسه میکنه یا لر رجاله علا قناتن این علا قناتن خبرون رأسه سر پسر دختر پیامبر و سر پسر وسیع پیامبر بر نیزه ایست علا قناتن قناتن رو نکراه بود یعنی بر سر یک نیزه بیعرضش ایست بر سر نیزه شکسته ایست علا قناتن طرف او این طرف او صفت بر نیزه شکسته است که بلند شد بر شد پس وای به دادم برسید که سر پسر دختر پیامبر، و سر پسر وسیع پیامبر، بر نیزه بیارزش بلند شده آه. بر نیزه بیارزش است که نیزه بلند شده نیزه رو بر خب خوبیست نگاه کنید تختیش کنیم ر سوب ت محمدن و وصی یا لرجا لالا قنا تن تورفاو تن تورفاو قم بعد علائم گذاری کرده که دارید میبینید؟ رعص ابن بن مصطف علم مزمر از نداره و از عرضشی نداده ازمار اومده تو اولین تفعیل ته محمدن متفاقیدون سالم است و وسیعهی متفاقیدون سالم است یا لر رجا مصطف علم باش. مزمر است متفاق ایلون سالم است، تن طرف او، تن ترفعو تن ترفعو مزمر الان مزمرست باشه زهاف ازمار یادتون باشه گفتیم داخل میشه به کسرتن هم داخل میشه آ، و قابل ادامه هم نیست درست شد؟ در جمعی انواج گفتیم داخل میشه و لزوم هم نداره حالا نگاه کنید میگه الملا هست اونی که توی این بیت شما دیدید اینه الملاحظ هست ان لزهاف ازمار قد دخل علی تفعیلت الاولا زهاف ازمار بر تفعیل اول داخل شده و رابع درست شد و به چهارم داخل شده و الخامسه. خامسه غلطه سادسه باید باشه باید من نمشه خامسه چون به شیشومی داخل شده دیگه تن ترفهو چارومی درسته یا لروجه مصطفیران بعد پنجمی سالمه لعلاقنا متفاقه ران شیشومی تن فاو مزمره است بس باید بشه به جای خامسه سادسه الملاحظ هنا ان زحاف الازمار قد دخل علا تفعیلتر اولا و رابعه و سادسه و معهازا با اونکه این زحاف ازمار تو سه تا از تفعیله هاش داخل شده معهازا فهوه یا حدومی من صحیح این بازم صحیح بهش میگیم چرا لعنه هاز از لا زمان؟ زیرا این زحاف قابل ادامه نیست لزوم ندارد چون لزوم نداره پس بنابر این این صحیح هست ما موقعی که به گردن شاعر گذاشته میشه چیزی که ادامه دار باشه اونجا بله اون میشه یه تست ولی الان چنین چیزی نیست خب این تمام شد این چیز قابل ادامه نداره پس اولیش کامل تام صحیح این بود که شیشتا متفاعلان داشت و اگر از ازمار هم برش داخل بشه و متفاعلان مستفعلن بشه بشه مزمره تأثیری ندارد چون قابل ادامه است. یه بیت هم مثال زدیم رعص بنت محمد و وسیهی یال رجال علا غناتن طرفا خب این ساده بود. به کامل مقتوع کامل مقتوع یادتون باشه گفتیم علت قطع اینه که میاد توی وتد مجموع وتد مجموع رو تبدیل به سبب خفیف میکنه در ضرب بیت داخل میشه اونم توی تامش و متفاقه رو فعیلاتون میکنه گفتیم گایی اوقات این فعیلاتون بهش زحاف ازمار داخل میشه میشه مفعولون و اون زحاف ازمار هم لازم نیست یه علت قطعه حالا کامل مقتوع کنومه یعنی کامل تام مقتوع هوه ماکانت تفعیلت و عروزهی متفایلون عروزش متفایلون ضربش میخواد بشه فعیلاتون خب اگر ضربش بشه فاعلاتن عروزش متفاعلن باشه این اگر بیت مسرع باشه عروض تابع ضرب میشه عروضش هم میشه فاعلاتن و الا تا آخر و الا تا آخر جایگاه خودش رو میگه هوه ماکانت تفعیلت و عروزهی متفایلون الا فلمسرم مگر در مسرم و ضربه مقتوعن ضربش میشه مقتوع یعنی متفایل که ما متفایل نداریم نبد متفایل بنویسه باید بنویسه فعیلاتون نقدر بزنیم؟ فعیلاتون و ضربه مقتوعن یعنی فعیلاتون میگه فغد یلحقوا غاظه اف ازمار، گاه یغاظه ازمار داخل میشه به این فعل وقد فغد خلو فغد و غاظه ازمار تفعیلت از ضرب المقطوعه و یغیرها الا مفعولن گاه یغاظه اف ازمار داخل میشه به تفعیله ضربی که مقطوع است پس اونو تغییرش میده به مفعولن الا ان دخوله لا يلزم ولی هواستون باشه که این مفعول شدن لازم نیست تو بیت بعدی به جای مفعولن باز میشه فاعلاتن لزومی ندارد فرض کردیم که اینجا بیت مسرع اگر یه موقعی داشته باشیم آ عروض ثابت زرب میشه، عروزم روزم دیگه متفاائلن نمی ماند تابعه میشه به خاطر هم می گفت اللافل ویت پس کامل مقطوعتانام اینه هوم ماکانن تفیلت و عروز متفایلن عروزش متفاائلونه. آیا همیشه متفاائلن میمونه گفت نه اگه بیتو مصررف باشه عروز تابعه زرب میشه، اللافل مصفرف و ضررب هم مقتون، ضرربش مقطوع است، به جای متفائلون میشه فعالاتون گاهی اوقات داخل میشه به ظاف ازمار گاهی اوقات ظاف ازمار داخل میشه به همین تفعیلی که مقتوع است تفعیله زد مقتوع و یغیرها الا عند دخوله لا ولی فقط بدونید که این دخولش لازم نیست نحو قوله شال مثل خود نگاه کنید و عذاب طویل به بزل وجه کساء الیا ف... و عذاب طویل به بزل وجه کساء الیا چه سائلن بخونیم چه سایلا یک است از ذره بذل فبذل هول المتکلم مفزالی اب زل ولل متكرب مل مرفزالی مع تازه مع تازه با زل وجهی به سوالی ابزن ول و ناللن به سوالی ول و به سوالی چرا اول باید خوب بتونیم بخونیم بعد خوب بفهمیمش بعد تبتی کنیم تا درست در و ازبطلیت به بزل وجهی کسایلا فبزل هلل متکرمل مفزادی معتازبا ولو وجهیهی به سوالیهی ولو نال لقنا به این شعر رو از کلام امیر المومنین گرفته در نحجر بلاقه امیر در نحجر بلاقه یه داره در اون کلمات قسار میگم میفرماید که ما و وجه هکه جامدون میگه آب روی تو سر جاشه ما و وجه جامد تو آب سفت صفت و محکم سر جاشه آب خدا تو آبرو من دافت ما و وجهه که جامعه یقطر و سوال دست دراز کردی سوال و درخواست کردی آب رویت میریسه کردن دست دراز کردن باعث ریختن آبروی انسان یغتره و سوال فنظر اندمن تخت میگه نمیگیم که کمک نگید نمیگیم دست راز نکن اما فنظر اندمن تخت رو نگاه کن ببین داری پیش که آورتو میدن میرسد اول برو پیشگاه خدا بعد برو پیشگاه اولیه خدا بعد برو اقل پیشگاه آدم هایی که مردند یه شخصیتی دارن آدم از هر کسی که چیزی نمیگیر حالا اینم داره همینجور میگه وعذب طلیتا به هنگامی که مبتلا شدی ناچار شدی به بذل وجهه که سائلا به اینکه ببخشی وجهی که یعنی آبروی خودت رو سائلا در حالی که درخواست می‌کنی میگه اگر ناچار شدی ممید. که آبروی خودت رو ببری آبروی خودت رو بدهی تا چیزی بگیری یعنی ناچار شدی به این همونقدر که در اسلام توصیه شده که قرض بدید ثواب داره کسی که قرض بده چقدر ثباب داره قرض حسنه، و من یغرز الله قرضن حسنن که تو قرآن داریم همون مقدار مستحب است قرض دادن به همون مقدار هم مکروه هست قرض گرفتن بیمرد این کسی بیمرد مثل کسی که همش دنبال اینه که کجا چی قرض میدن وام میدن بخواد بگیره این معمولا انسانی است که در آبرو کسی برش ارزش قائل نیست این کراهت داره لذا میگه و عذاب طلی تبه بظل وجه کسائنا اگر ناچار شدی که آب روی خودت رو بدهی و چیزی بگیری فبزل ها جواب ازاس فبزل هل المتکرلم المفزار پس آب رویت رو بده اگر ناچار شدی یعنی مجبوری باید برای رفع مریضی باید برای رفع حاجتی که داری خلاصه دست راست کنی از کسی چیزی بگیری تلاشو کردی، خلاصه نشده الان دیگه نیازمندی، باید بگیری تا بعد پس بگی. اشکال نداده. اما فضل خود، آبروت رو بریز، لن در مقابل کسی که متکرمه، یعنی کرم نشون داده. کریم دیده شده. لن متکرمل مفزالی، مفزال صیغه مبالغه است. کسی که فضل آ از او دیده شده نه اینکه کسی که تا حالا دستش ندیدیم به طرف کسی دراز شده باشه چیزی بده خودش آدم گدا و هزار تا گرفتاری خلقی و خلقی داره بری جلوی اون زانو بزنی دست دراز کن نه جلوی هر بی سربایی دست دراز نکن لاقل کن از خاتمتاری که لا میشناسد که اگر به کسی چیزی داد آبروی او را نبرد میگه و عزت طلبت و اگر دوچار شدی به بذل وجه کسائلا به اینکه آبروی خودت رو با درخواست کردن در حالی که درخواست میکنی بریزی ریزی پس بریزونو للمتکلم المفصادی در مقابل کسی که کرم دارد متکرم است، خودشو کریم نشون میده و مفضال است اهل فضل، اهل عطا و کرمه چرا؟ چرا گفتیم این کارو کن؟ این علت این بیت دو معتازه بازل و وجههی به سؤالهی اوزند ما اعتازه وزن. اعتازه یعنی عوض گرفت میگه عوض نگرفته است چیزی را معتازه عوض هیچ عوضی نگرفته است؟ در مقابل آبرو هیچی نگرفته هیچ عوضی نگرفته کی بازل و وجههی به سؤالهی کسی که آبروی خودش رو داده با درخواست کردن کسی که آب روش رو برده داده هیچی چی گیرش نیمده میگه چی؟ ولو نال الغنا به سوالی لقنا لقنا یعنی سروت الفلام داره الفلام جنسه یعنی کل ثروتن ولو نال الغنا ولو برسد به تمام ثروت ها به سوالن با درخواستش آم به سوال یعنی به سوالی با درخواستش ولو دنیا بهش بده معتازه هیچ هیچی گیرش نیمد بازل و وچهی به سوال کسی که آبروی خودشو میده با دستراز کردن هیچ چیزی عوض نگرفته ولو تمام ثروتها را با درخواست کردن نایل بشه یعنی آبرو قیمت نداره تو وقتی رفتی آب روت رو دادی ولو بهت هرچی هم بدن بدون قیمت نداره تو یک شیء فوق قیمتی دادی هرچه بگیری بیخود است عوض او به حساب نمید عوض یعنی اینکه این معادل اوست تو هیچ معادلی نگرفتی چرا؟ چون اون چیزی که تو دادی ولو تمام ثروت ها را بهت بدند معادل او نیست آبرو چیزی نیست که بشه معادل براش ها معتازه بازل فاعل اعتاز است بازل و وچهی به سواله هی به سوالی متعلق به, به بازن. کسی که وچه خودش رو آبروی خودش رو ریخته با سوال کردنش معتازع غزن هیچ عوضی به دست نیاورده، هیچ مقابلی نگرفته ولو بهش لو لوی وصلیه اگرچه ولو نال به سوالی اگرچه با درخواست کردن همه ثروت خوارم بهش بدن ارزش نداره عوض روش به حساب نمیاد معامله رو باخته تاز بازل و وجهی به سؤالهی اوزن ولو الغنا به سوال. خب شعر رو فهمیدیم شعر قشنگی هم هست کامل مقتوعه حالا بخونیم ببینیم چجور خواهد شد میگه که و زرب طولیه تاب بزل ودج هیکس آئلان فبزول هلل متكال حالا نگاه کنید و ازاب تولی متفايلان سال ما از باش کرد بزل سال از هکسا ایلن متفاعلان فبزل هلل مصطف علان مزمر است اینجا باش قابل ادامه نیست متکرمل متفائلن اما یک ها که مفضالی مفعولان ضربش اومده مفعولن زربش اومده مفعولان یعنی در واقع فعیلاتان بوده مغتوه بوده زهاب ازمار هم داخل شده شده مفعولان مغتوه مزمره ما گفتیم مغتوه بودنش لازمه مغتوه بودنش بگیر لازمه یعنی فعیلاتان اما مزمره بودنش لازم نیست یعنی تو بیت بعدی ممکنه به جای مفعولان آمده باشه فعیلاتان چون مفعولون شدنش لازم نیست اما فعیلاتونش چه یه مطلب مطلب دومینه عروض بیت متفاعلون ضربش فعیلاتون ضرب تا به او نشده عروض چرا؟ چون بیت بیت مسرن نیست و ازبطلی تا به بزل وجه کسا ایلن فبزل هلل متکلم این بیت مسعر نیست به خاطر همین علوزش اومده فکسالاً متفائلن ضربش اومده مفزالی مفعولن مقتوعه مزمره حالا نگاه کنید معطا زبا مستفعل اولش مزمره است و وجههی متفائلن سالم است به متفا متفاعلون سالم است اوزن ولو اوزن ولو متفاعلون سالم است ناللغنا مصطف علون مزمر است ناللغنا مصطف علون مزمر است به سوالی ببین اینجا دیگه فقط علت داخل شده مقتوع دیگه مزمره بودن نمت میتونست بیا بله میتونست استفاده کنه لزومی نداره لزوم نداره که هم مقتوعه مزمره بشه اما مقتوع بودن چرا؟ الان بیت بعدی چی میشه؟ بیت بعدی میشه متفائلون متفائلون متفائل متفائلون متفائلون فعیلاتن باز میشه بیت بعدش متفایلون متفایلون متفایلون متفایلون متفایلون فعیلاتون حالا آیا این فعیلاتون ها ممکنه بشه مفعولن بله میتونه زعاب ازمارم داخل بشه میتونه هم درست شد نگاه کنین همینو میگه الملاحظو ان تفعیلة الاروز جاعت سالمت اونچه که میبینید اینه که تفعیل اروز سالم اومده و تفعیلت و ضربه جاعت مخط و تفعیله ضرب هم مقتوعه اومده فعلاتم و قد دخل علیها زهاف از مار البیت بیت و به این تفعیله مقتوعه که تفعیله ضربه داخل شده زهاف از در بیت الابد در بیت اوفد زهاف از داخل شده و علا عدد من تفعیلات په و به تعدادی از تفعیله در هشک هم داخل شده بعدش می نویسید بخوه لیسه بلازم بخوه لیسه بلازم این زهاف ازمار داخل شده حالا چه در ضربش داخل شده باشه فعلاتون رو کرده مفعولون چه در هشف داخل شده متفاعلون رو کرده مصطفعلون این زحاف ازمار در اینجا جاری مجرای علت نیست و لازم هم نیست خب الملاحظو آن تفیلات از عروزه جاعت سالمتن و تفیلات از ضربه جاعت مقدورتن و قد دخل علیها زحاف و لزمار فل بیکل اوله و علا عدد من تفعیلات فل هشفه و هوا لیسه بناسه و این لازم هم خب الف و برخوندیم الف کامل صحیح بود به کامل مقتوع الان میخوایم کامل احض رو بخونیم کامل احض ببینید دوتاست جیمش کامل احض دالش کامل احض مزمر چرا چون توی علت حزز گفتیم که اگر ذحاف ازمار رو شاعر انتخاب کنه باید ادامه بده ذحاف ازمار رو انتخاب کنه باید ادامه بده پس شاعر اینجا دو تا راه داره یا فقط علت حضز رو انتخاب و دیگه زحاف ازمار نیاره آه یا نه انتخاب کنه زحاف ازمار رو همراه با اون علت حضز یعنی نمیشه که زحاف ازمار رو اینجا بیاری با علت حزز و ادامه ندی مثل بالایی نیست پس خودش میشه دو قسم یه شاعری میاد فقط از علت حزز استفاده میکنه و ادامه میده یه شاعری دیگه میاد از علت حزز استفاده میکنه با بگید زحاف ازمار. این باید هر دو رو ادامه بده باید هر دو رو ادامه بده پس میشه دو قسم یک الکامل الهز کامل اهز وقوه ماکانت تفعیلت و عروزهی حزاق اونه که تفعیله عروزش حزاه عروزش حزاق فاعلن. یعنی متفایلون متفایلون فاعلن. متفایلون متفایلون فاعلن. و ضربه مثلها مثله ها ضربش هم مثل اونه متفاعلون متفاعلون فعلون. آیا اینجا بیت و با بیت و غیر و فرق کنه؟ نه فعروز فعیلون ضرب هم فعیلون حالا بیت و باشه با غیر و باشه فعلون. این اصلا خودش عروزش تابع ضربش هست پس دیگه بیت و و غیر و اینجا فرقی؟ نداره کااملواحذ و وهو ما تفیلت و عروزه حد زاعت تفیل ارزش حذااق فیلون و ذرب به هم مثل مثل اون هستش و هه وناائللتتون ح از اینجا علت لازمتون واجبم هست یجب ان یه یهاده الشاعر واجبه که شاعر بهش موقعیت بشه ادامش بده نه و قول شارره پس. کامل احضه چطور میشه؟ این میشه که ضرب و عروض هر دوتا به جای متفاعلان میشه فعلن به جای متفاعلان ضرب و عروض میشه فعلان این کامل احضه نگاه کنید ولش شبابو نه بقولشا ولش شبابو فقومتو اندوبوهو لا مثل ما قالو ولا نده میگه وله شباب وله یعنی عد رفت پشت کرد و رفت از شباب الفلام داره یعنی شبابی یعنی جوانی من این جمله خبری برای اظهار تحصول اومده یعنی ای وای جوانی را. این جوانی از کفم رفت بلش شد. فقوم تو اون. پس من هم الان دارم براش ندبه میکنم قوم تو یعنی استادم و ندبه براش میکنم پس من هم استادم و برای اون گریه وزاری میکنم میشه؟ نیست دادم نهی که وایس مثل که بگیم وایس راستشون بگو، وای ها و حق بگو یعنی اراده کن و حق بگو بخواه و حق بگو میگه جوانی رفت و من هم الان میخوام براش زار زار گریه کنم ند بکنم فقوم تو اندو بخو یه اندو بخو خال است از برای تای خورتان و من هم الان خواستم و دارم در حالی که براش گریه کنیم خب بعضی همثال این فقومت و هندو و هور و قومت و قامر از افعال شروع می دونن. یعنی جوانی رفت پس منم شروع می کنم به ناله کردن برای حالا فقم تو از ملحق به افعال شروع می داننده بله شباب و تو بعد میگه لا مثل ما قالو ولا ندبو این ولا ندبو یعنی ولا مثل ما ندبو این لا مثل که تکرار شده لا مثل و لا مثله, ولا مثله. نمثله این نمیسته این این مفعول مطلبه برای اندهوه یعنی اندهوه ندبند ندبتند ناله میزنم برای اون ناله کردنی لا مثل ما قالو و لا ندبه نمیسته اون چیزی که شعرها گفتند و یا ندبه کردند مفعول مطلق نوعیه این ما مستریه است یعنی لا مثل قولهم و ندبته هم لا مثل قوله هم و لا مثل ندبته میگه جوونی از کفم رفت الان نشستم و دارم براش گریه میکنم گریه کردنی نه مثل اونچه که شعرها گفتند که امثال امروال و دیگران میگن ما در اطلال گلیه کردن و نه مثل ندبهی که اونها کرده خیلی مافوقید قشنگی ولش شباب و فقومت و لا مثل قولهم هم ولا مثل ندبتهم و من همگاه سلامو دارم ندبه برای اون میکنم نه مثل این چه که شوعرا گفتند و نه مثل آن چه که شما شنیده ای. نه نه یه چیزی مافقه کامل احضه عروزش حضا فعلن ضربشم حضا فعیلان حضا از جاری مجرای علته در اینجا شاعر واجبه که خودش علت جاری مجرد خودشه و شاعر باید بهش مقید باشه یه بیت هم خوندیم خب گفتیم که اینجا بیت مسرم با غیر مسرم فرقی نمیکنه. اینم مثالی که زده بیت مسرم نیست ولش شباه و فقوم تو لا مثل ما قالو ولا ندم شباه مصطف علان باست اینجا مزمر هست تو هشت کدید بو ف قم تو ان متفا ایلون دو بو هو دو بو هو ف هزار تو ما عروض بید لا مثل ما مصطف علان قالو ولا مصطف موزعلان موزمره ندبو فعلون ازا هم عروضش هزاه هم ضربش هزاه یعنی وزنش این شده متفاعلن متفاعلن فعلون متفاعلن متفاعلن فاعلن وقتی متفاعلن متفاعلن فعلون متفاعلن متفاعلن فعلون هستش ده این باید بگیم کامل احز کامل هز و اون فعلان رو بهش میگم هزا چون علت هزز بهش داخل شد الملا هزو هنان اونی که شما اینجا دارید میبینید اینه ان این که زحاف ازمار داخل علی بر تفعیلت اولا این ذهاف ازمار داخل شده بر تفیله اول خب باش مصطف اولا ولش شبا. و رابعت چهمی داخل شده ناممثل ما ول خامسه پنجممی داخل شده قالو و لا. و یجب انلایت خل هاز از زههااف العروض روزه و ضردی هازن نوع من بهره کامل ولی واجبه که داخل نشه این زهاف و تفیله و زرد در این نوع از بهره کامل چرا واجب انتخاب نشه وارد نشه چون شاهی خودش قبول نکرده دیگه؟ وقتی تو اول فقط حزا رو انتخاب کردی دیگه به گردنت تا آخر حزا بگی کامل احظ رو تو انتخاب کردی دیگه بر تو جایز نیستش که زحاف ازمار رو به عروض و ضربش که حزا هستش داخل کنی امکان نداری چون اینو انتخاب کردی اینو انتخاب کردی انتخاب شاعر دیگه میاد در کنار علت حز از ازمار هم قرار میده اون هم باید اون را ادامه بده اون دیگه نمیتونه بیاد زهاف اضما را کنه اونم هم نمیتونه بیاد زهاف اضما یعنی این یه نوع نوعه بعدش هم یه نوعه فرقشون هم در اینه که هر دو اهض هستند کامل اهض ولی یکی زهاف اضما را قبول کرده باید تا آخر ادامه بده یکی زهاف اضما را قبول نکرده تا آخرم نباید بیاره دو discussing ویجب با ان لا از خلهاز ذهافو تفعیلت العروض و زد فیها زنو من بهره کامل چهارمیش کامل احض مزمر این کامل احض مزمر خب مشخصه کامل یعنی شیشتا تا متفاعلونه تام یعنی شش داشت هست احض یعنی یکی از متفاعلان در مصره که ضرب و عروض باشه اومده تبدیل شده به فعل. مزمر اون فعلان تبدیل شده به فعلان زهاف ازمار بشته باشه زهاف ازمار اینجا جاری مجرای علت شاعر واجبه که ادامه بده نمیتونه از زیرش در بره یعنی حتما باید ادامه بده. کامل احظ مزمر و هو ما كانت تفعیلت عروض هی حزا فعلن و تفعیلت ضرب و هی حزا مزمر ضربش حزا مزمر است عروضش حزا فقط پس این به این نوع با نوع قبل توی مصرع اول هیچ فرقی نداره هر دو متفاعلن متفاعلن فاعلن عروضشون فعلان اما ضرب اون نوع اول فعلن نوع دوم ضربش میشه فعلن آیا اینجا بیت مسرع با غیر مسرع فرق میکنه یا نه بله بله اینجا فرق میکنه چرا چون اینجا اگه بیتش بیت مسرع باشه عروضش هم به جای فعلن میشه فعلن اگه بیتش بیت مسرع باشه عروزش هم به جای فعلان میشه فعلن اینجا بیت مسلف با غیر هم حالا اگر گوش گوش گوش گوش اگه یه دو بیتی داشته باشیم یه دو بیتی بیت مسر هم داشته باشه خب وزنش من میگم این میشه نگاه کنید متفائلن متفائلن فعلن هزای مزمره متفاعلون متفاعلون فعلون متفاعلون متفاعلون فعلون بیت دوم متفاعلون متفاعلون فعلون متفاعلون متفاعلون فعلون بیت دوم عروزش فعلون ضربش فعلون ترس پس این دو بیتی اینطوری میشه شه بیت اول که بیت مسرعه متفائل متفائل فعل متفائل متفائل فعل بیت دوم که بیت مسرعه نیست متفائل متفائل فعل متفائل متفائل فعل راحت <سؤال> <skaz> <skaz> کاملع حد مزمر و همان ما كانت تفعیلت عروزه حذا فعل و تفعیلت ضربه حذا مزمره تفعیل زر بشم حفظای مزمره فعلا ایجه با انیکون از زحاف و لزمار فی تفعیلت زرد جاری ان مجرد اللف فلزون یعنی واجبه که زحاف و در تفیل زرد جاری مجرد اللف بشه در لزون نه به قول شریف رزی مثل قول مرحومه شریف رزی علالله و مقامه صاحب نهجر بلاغه جامعه نهجر بلاغه مرموم شریف رزی اینجا این رو گفته حالا آیا بیت مصرح هست یا نیست؟ بله نگاه کنید رودو بردو ردو رودو بردو رودو حالا رودو این مرحوم شریف رضی در مورد اون خلافایی گفته بوده که اسای پیغمبرو عصای او پیغمبرو و ردای پیغمبرو به عنوان جانشین پیامبر غصب کرده بودند و بر جای پیغمبر تکیه زده بودند و خودشون خلیفه می دانستن. به اونها اینطور تشر میزنه زنه ردو رد تراث محمدن ردو رد تراث یعنی ارس میگه ارس پیامبر رو پس بدید پس بدید ارس پیامبر رو این ردوی رد دوم تاکید برای اون ردوی رد پس بدید پس بدید ارس پیامبر گرامی اسلام داره. چرا؟ چرا پس بدید؟ لَيْسَ الْقَذِيبُ لکم وَلَ الْبُرْدِ الْقَذِيبِ یعنی اون عصا الفلام داره. زیرا اون اصا مال شما نیست و اون برد مال شما نیست. بردی که به روش انداختید اون عبایی که به دوش انداختید و اون اصاری که به دست گرفتید و دارید خطبه میخوانید و خود رو خلیفه پیامبر میدونید و جانشین ها؟ این حال برگردونید اینها مال شما نیست شما قاصبید. لیسل غذیب استیناف بیانیه جاو سوال مقدره که چرا گفتیم برگردونید چون اینها مال شما نیست شما قاصبید. ردو تراس محمد ردو لیسل غذیب لکن ولل بردو بعد چرا شما اینا مال شما نیست؟ چرا مال شما نیست؟ جواب میده هل عرقت بیکن که فاطمتن؟ آیا ریشه دارد در بین شما شخصی مثل فاطمه زهره سلام الله علیها یعنی شما کسی دارید مثل دختر پیامبر که دختر پیامبر باشه ارس مال او باشه بعد از طریق او به شما رسیده باشه هرچی از پیامبر است در زمانی که پیامبر از دنیا رفتند و حق تعالی او رو به نزد خود بردند هیچ وارسی جز پیامبر پیامبر جز دختر خودش صدیقه تاهره سلام و علیه ها نداشت پس هرچه بود به اون رسیده آیا شما مادری دارید مثل صدیقه طاهره که بگید از مادرمون به ارث بردم اینا رو نه این مال حسن حسین علیهم و سلام دختر در پیامبر فرزندانش امام حسن و امام حسین مال اوست هل ارلقت فیکو یه حل اینجا استفهام به معنای نفی آیا شما مادری مثل فاطمه زهرا دارید یعنی ندارید این کفاتمت این کاف اسم به معنی مثل و فائل عرقته یکی از چیزهایی که شما تو نحو میخوندید این بود که کا، گاهی کاف که حرف جله به معنی مثل میامد و میتونست فائل بشمسی اینجا دوباره شاید مثالش اینه که این فاطمه غیر منصرفه اینجا کفات متن اگر خوندیم و منصرف خوندیم به خاطر وزن شعره یعنی ضرورت شعری اختصار حلم که به معنای نفی بود یعنی ماهر وقت چون ریشه ندارد در بین شما مادری هم کفاته بود ام حل لکم که محمدن جدو آیا شما مثل پیامبر جدی دارید؟ آیا جد شما پیامبره؟ نه پس بنابراین شما نه جدتون پیانبره نه مادرتون صدیقه تا است که از پیامبر به ارث برده باشه پس شما الان این اصا و ردا را گرفته اید و خلیفه شده اید به چه عنوان؟ هیچ قسمیست برگردانی ردو ترا بیت اول مسرعه ردو و بردو بیت دوم کفاتمتن نیست و دو بیتی است که از شریف رزین ار کردیم ردو تراس محمد ردو لیس الغظیب خب لکم ول البردو هل عرقت فیکم کهفاتمتن ام هل لکم که محمدن جدو خوب نگاه کنید راحته ردو ترا مستفعل تم محمدن متفائلرد بابا شما گفتید عروزش فعلان میاد فقط هزاد دیگه مزمره نباشه میگه اینجا چون بیت مسرعه لازمه که مزمره هم باشه چون عروز تابع زرق میشه ردو فعلان هزاد مزمره لیسل قضی مصطفی الان مزمره است بلکم ولل متفائلن سالم است برد و فعلن مزمر است اما بیت بعد عروضش دیگه فقط هزای مزمره نیست چون بیت مصرحه نیست هل ارغد مستفعلن فیکم کفا مستفعلن اینا مزمره تمتن فعلون حزال فقط اما این مصر آخرش باید هزاه مزمره بیاد امحل لکم مصفعلن ک محمدن متفائلن سالم جد فعلن هزال مزمره الملاحظه اونی که ملاحظه میکنید ریاضین البیتین اینه ان ذها و الاظمار قد دخل علی التفعيله الاولى و ال را البیت لعابد زحاف ازمار داخل شده و تفعیل اول و چهارم از بیت اول از بیت اول در اول تفعیل اول و تفعیل چهارم داخل شده لازم هم نیست درست شد من و تفعیلت اولا و ثانیت و رابعت من بیت ثانی و در تفعیل اول و دوم و چهارم از بیت دوم هم داخل شد. اینها لازم نیست اما همراه با ضرب آمده اونجا جاری مجراع علته باید بیاد درست شد همراه با ضرب مثل جدو مثل بردو پس چرا همراه با عروز هم تو بیت اول اومده؟ چون بیت مسرر بوده ولن ما جا ال بیت اول و, و شابهت تفعیلت و تفعیلت از زرب چون بیت اول بیت مسرر بوده تفعیل عروزش شبیه به تفعیل زرب شده و اون هم هزای مزمره آمده چونگه این قاعده به کل هر بیت است و حاضر شعن و کل بیت مسرعه و این جایگاه و موقعیت و قاعده هر بیت مسرعیه که هر بیت مسرعی چنینه که عروس تابه زرد میشه اینجا هم عروض تابه زرد ببینید ما انواع تام این رو خوندیم با هم بهر کامل رو انواع تام خوندیم بهر بسیار لازم و کسی رو است در شعر عربی خیلی جایگاه داره و وساید زیادی هم برش سروده شده من هم سعی کردم که خیلی آروم آهسته روان با تکرار برای شما بگم بعد از اینکه یاد گرفتید یه خلاصه نویسی نصف صفحهی بکنید همش رو با اون مثال هایی که هست میتونید راحت خلاصه نویسی کنید و خیلی قشنگ به خاطر بسپورید و هیچ جایی نگرانی هم ندارید. من بهره کامل رو نوع تامش که برای شما بیان کردم و نمیخوام الان توی این فرصت گرچه خیلی سریع میتونیم چون آماده هم هستیم و ذهنمون الان آماده است نوع مجزوش رو بخونم تمام بشه ولی میخوام بگذارم بمونه. که موضوعش بمونه برای انشالله جلسه بعدمون که من یه دوره شما مطالعه تونه یه دوره هم نسبت به اون بهر کامل به طور دقیقه بعد از مطالعه شما داشته باشیم و نوع موضوعش رو برای شما بخونم که دوره بشه براتون یه مقداری به قول خودمون. به شما این فرصت رو بدیم که بتونین یه مطالعه روش داشته باشید و ما هم یه تکرار دینه که اینها رو یاد بگید و یه بدونید من قبلا هم به شما گفتم که عروض حفظ کردنیه وقتی یادش گرفتی باید حفظش کنی حفظش هم اینطوریه منم خودم گاهی و یادم میره اونی اینطوری نیستش که فکر کنید که ولی خب من هر زمان نگاه کنم سریع به ذهنم میاد تکرار کنم آیده شونه. شاید ده بار حفظ کردم ممکن از یاد هم هم بنابراین عروض فقط حفظ کردنی اولش یاد گرفتنی خوب یاد میگیری بعد خلاصه نویسی میکنی بعد حفظ میکنی و حتما هم باید شما این رو الان خوب یاد بگیرید بعد سعی کنید حفظش کنید دم امتحان اون یک روز آخر اون موقعیتی که هست یه نگاهی میکنید و قاعدش رو به ذهن میسپرید و حفظ میکنید و ان شاء تعالی موفق و مؤید همه شما رو به خداوند سبحان میسپارم ان شاء که در پایان هفته الهی موفق و مؤید باشید و در سلامت کامل التماس دعا تا هفته آینده که قسمت دهمش که قسمت مجزو هست رو برای شما بخدم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته